همان زنی که برایم دکتر آورده بود جلوی در می و میگوید خانم محمد جنی با من بیای به حساب حبیب 16 روز است اینجا هستم خودم فکر می کنم در آن اتاق دو درسه با آن پتوهای کهنه و موکت ای رنگ زندگی می کنم را سر می کنم آهسته میگوید گوید رو دست نخوری؟ من ظوررش را نمیفهمم. حبیبه چیزی زیر لب زمزمه میکند. وقتی از جلوش رد می سرش را میچرخاند و به چادرم فوت میکند. از در خارج میشوم. دو جوان با لباس معمولی جلو دریز دادند. راهروی باریک را به دنبال زن تا انتها می رفن. بعد وارد یک راهرو عریز در سمت چپ میشویم. راهرو شلوغ است. زن گوشه ای چادرم را میگیرد میگوید سریتر به دنبال زن کشیده می شود زن از در ورودی خارج میشود سوز سردی به صورتم میخورد انتظار دارم نور خورشید چشمم را بزند نوری در کار نیست آسمان ابری و گرفته است دلم میخواد بدانم اینجا کجاست؟ پاترول سبزرنگی رنگی کنارمان توقف می کند. زن همراه هم سوار می شود. همان دو جوانی که در راه رو دیده هم جلو سوار می شود. یکی رانندگی می کند و یکی بغل لستش مینشیند. وارد خیابان که میشویم برف چهک رنگی در پیاده روها می بینم. که این برف باریده؟ همیشه نسبت به اولین برف زمستانی حساس بود. حس می کنم زمان ذهنیم در هم ریخته است احساس می کنم از یک بی زمانی وارد زمان شدهم. سعی می کنم بدنم چه ساعتی بچه ها در خیابان نیستند پس در مدرسه هستند مغازه ها تک و تک بازند و مردم در رفت آمدند حدس می زنم ساعت نه تا ده صبح باشد در تمام طول مسیر به بیرون نگاه نمیخواهم چشمم به چشمه هیچیک هم راهانم بیفتد از همین حالا خودم را گناه کار میدانم جرمم را حدس میزنم اما نمیدانم نقش رحامی در این ماجرا چیست روزهای اول هر دقیقه منتظر ورودش رو به آن اتاقک بودم دهها بار ی در آغوش گرفتن هنیف را از آغوش پدرش در ذهنم به شکلهای گوناگون بازسازی کرد دهها بار در آغوش روحامی گریه کردند و دهها بار روحامی موهایم را نوازش کرد و گفت: دیگه همه چیز تموم شد. این یک سوء تفاهم بود. از ماشین پیاده میشویم. زنگوشه چادرم را می گیرد دو جوان پشت سر من حرکت میکنند. وارد ساختمانی میشویم که از همان آغاز می دنم دادگاه است. زنی بچهش را رو روی شانه انداخته و به پشتش می زند. ناگهان به صرافت می چهره ای بچه را ببینم. مسیرم را کچ میکنم. زن چادرم را میکشه. چند نفری متوجه میشوند و نگاهم میکنند. احساس میکنم از زن همراهم هم میآید. زن چادرم را میکشد و روی نیمکت می نشند. چسبیده به زن می نمیخواهم نقش زندانی را داشته باشم. یکی از جوانها در رو رو رو را می و داخل می مدتی طول می تا بیرون بیاید. وقتی بیرون میآید به زن اشاره میکند. زن میگوید. بلند شو. بلند می زن تا دم در همراه هم میآید. در را باز می و میگوید. برو تو میروم. من منتظر میمانم تا زن هم بیاید اما او در را پشت سرم میبندد صدایی میگوید بیا جلو مرد را انتهای اتاق میبینم موهایش خاکستری است اما تمام محاسنش سفیدند جلو میروم هنوز نگاه هم نکرده میگوید بنشین روی اولین صندلی می نشینم. به مرد نگاه می کنم، سرش را خم کرده و مطالعه می کند، بینیش کشیده و لبهایش باریکند، دلم می خواهد زودتر سرش را بلند کند تا چشمایش را ببینم، سرش را که بالا می آورد سرم را پایین می اندازم، نگاهش را روی چهرم حس می کنم، می گوید مرتزه امیریون را می سرم را بلند می کنم. نگاه در هم گره می خورد. زودتر از اون من سرم را پایین می اندازم. نه. ولی او شما رو می شنسه. ولی من هیچ وقت اسم این آدم نشنیدم نشندم. کمکتون می کنم به خاطر بیارین. 28 ساله، دانشوی حقوق دانشگاه تهران، اهل جیرفت صورت. من در عمرم این آدم ندیدم. هیچ وقت مطمئنین؟ بده این نامه رو میشناسین؟ کاغذ رو به طرفم میگیرد جلوتر میروم کاغذ را میگیرم کپی یکی از نامه های محسن به ملیه هست منتظر این مورد بودم نامه نامزد یکی از دوستامه کدوم دوستت؟ ملیهه ولی اسمی از ملیه نامی در این نامه نیومده. نیومده؟ نه. نامه را سرسری نگاه میکنم. در روزگاری که ارتجاع سیاه با حمایت امپریالیزم جهانی مردم رنج دیده ای ایران را به بند کشیده است، چگونه میتوان از اش سخن گفت. نامه را بیش از ده بار خواندم چرا قبلا در سطر سطران آن نام؟ ولی حالا یک جا هم نامه او را نمی بینم. ترس در جانم می ریزد. خوب چی میگین؟ فکری در ذهنم جرقه میزند. از خود مدیهه بپرسین. این نامه ها پیش من امانت بود. پرسیدیم. اون از وجود این نامه ها بی است. شما که همی الان از من شنیدین که این نامه ها مال مدیه هست. پس چطوری؟ مسئله به این نامه ها محدود نمیشه. آشفته و گیجم. ذهنم تکرار میکند. این کار. این کار. این کار. این تنها راه حل است. به هر حال این نامه ها مال من نیستن. مرد نامه را میگیرد. از میان کاغذ هایی که جلویش هستند کاغذ دیگری برمیدارد و به طرفم میگیرد. حتما اینم مال شما نیست. کاغذ را میگیرد. نامی سعید است بانگاه فریاد زد دوستت دارم دوستت دارم چه آغازی. چرا در این لحظه در اینجا همه چیز معنای دیگری میدهد چرا تا به حال با آغاز شگفت انگیز نامه سعید فکر نکردم. داستانش مفصله بفرمایید گوش میکنم چند سال قبل جوانی معلم روستامون بود که در منزل ما مستجر بود. برید سر اصل مطلب اینا رو میدونیم. اصل مطلب کجاست؟ اینا که همه چیز را میدانند. چه بگویم؟ هم دیگر رو دوست داشتیم. قرار بود با هم ازدواج کنیم. اما وقتی برای آوردن خونوادش برای خواستگاری رفت تهران، جز نامه از اون هیچ خبری نشد. دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم معنای این جملات رو می دونی؟ این بخشی از شعر شاملوست می دونم سعید ادبیات بود یعنی نویسنده بود تکی کلامش از این اون بود ولی این شعر در این نامه معنای دیگه ای میده. چه بگویم چه کسی دهانه چه کسی را می بوید. چرا میبوید چرا دوست داشتن را ممنون میکند چرا شعری که آن همه برایم عزیز و دوست داشتنی بود حالا تنابیست که بر حلقومم بسته شده این آقا سعید چه جور آدمی بود دانشی تاریخ بود اینا رو میدونیم منظورم اینه که چه جوری فکر میکرد اهل شعر و داستان بود به سیاست اعتقادی نداشت یعنی به کار سیاسی اعتقاد نداشت تصمیم داشت نویسنده بشه یعنی چجور نویسنده ای؟ چجور نویسنده ای؟ سوال را زیر روم میکنم. منظورش چیست؟ منظورش این است که اون نویسنده ای سیاسی بود اصلا سعید که جز آن داستان کوتاه، آن هم به اصرار من چیزی ننوشت اصلا او که نویسنده نبود یعنی هنوز نویسنده نشده بود والله من نمیدونم. من فقط یه داستان کوتاه از اون دیدم که اونم تحت تاثیر فضای روستایی که در اونا معلم بود نوشته بود. بله، داستان رو خوندم. مطلب است در مزمت اعتقادات مردم. مدتی سکوت میکند. برگردیم به قضیه ملی نجفی. آخرین باری که اونو دیدین کی بود؟ تقریبا چهار ماه پیش. کجا ؟ اومد خونه ما؟ برای چی؟ برای چی؟ راستش رو بگو اینها همه چیز رو میتوند تازه همین حالا باید پای روحامی رو وسط بکشی شاید فرجی شود شاید این گره ها باز شوند اومده بود تا شوهرم حاج روحامی براش کاری انجام بده چه کاری؟ چه کاری؟ باید میپرسید مگه شوهرت چه کار است؟ احمق حتما شوهر میشناسه دیدی با شنیدن نامش هیچ عکس و نشون نداد. چندبار بار احسارش کرده بودن. به خاطر وضعیت نامزدش، ترسیده بود میخواست ها پادر میونی کنه بلکه دست از سرش بردارن. باید بپرسد چه وضعیتی؟ سادی؟ آنها همه چیز رو میدانند خب اگر همه چیز را می چرا من را احصار کردند؟ چرا این بله ها را آورند؟ مگر نمی دانند من کاره ای نیستم؟ این درست است که آقای مرتضا امیریون رو در گوران دستگیر کردن؟ این مرتزا امیریون کیست؟ به ماجره من چه ارتباطی دارد؟ در گوران چه کار می کرده؟ باید بپرسم؟ بپرسی تو فقط باید جواب بدی در مقام پرسش کردن نیستی نمیفهمم بگذارید شما و مادر در شهریور سال 1359 همراه با گروهی از های فدایی خلق جنازه های اختر و امیر اسفندیاری را جابجا کردید قصال خونه روستای شمس‌آباد را رو خراب کردید و مأموران رو سردرگم کردید بقیه گفته را نمیشنوم. روحامی من فقط به روحامی گفتم یعنی ممکن است ممکن است او مرا لاداده باشد نفرت است یا خشم یا ترس که درونم را پر می کند مرد من پدر بچه نه این غیر ممکن است چرا ممکن است مادرت که دهنش قرص است از زللا که از همان سال با توران خانم و خانم سلطان رفتن تهران گم و گور شدند پس میپذیرید این کار ای ندارد باید توجیه کنی من اون وقت فقط 16 سالم بود مادرم دستنها ها بود دوسته اختر و امیر ترسیده بودند به گمری بکو بیمارستان بستری شدی؟ بکو مجبورت کردن؟ بکو مادرت گلفت عزیز الله پیک بود؟ ناچار بود به هر بابش گوش بده؟ بگو نان خورشان بودی؟ من مریض شدم، بیمارستان بستری شدم، خیلی وحشتناکی بود اونا به شما پول دادن، کیا؟ همون چریکا؟ نه، من نمیدونم ولی فکر میکنم عزیزالله بیک به مادرم پول داده بود. نه اونا... چرا این کار کردی؟ من که گفتم. مادرم دستنها بود. هم مای اختر و امیر ترسیده بودن. کتاب ماهی سیاه کوچیلو را بالا میگیرد. ولی انگار رابطت با اختر خوب بوده. این کتاب و سال دوم راهنمایی بهم داد. ما تو خونشون کار میکردیم. بعضی وقتا که از شهر می اومد برامون یه چیزایی می افرد. بگو من بچه کوچیک دارم یه بچه یه سه ماهه اون مادر میخواد. هنیف، حنیف هنیف هنیف من چرا هنیف و فراموش کردن حبیبه میگفت گفت روز اول همش هنیف هنیف می کردی. تو خواب و بیداری می آدم سگ بشه مادر نشه از هنیف بگو بگو التماس کن به خاطر اون اختر و فراموش کن گور پدر محسن و ملیه لعنت به سعید به هنیف فکر کن نزار این بچه بی مادر بزرگ بشه اون روحامی رو داره پدرش اون منو داده، اون ماجرای ی اختر رو گفته اون با روحامی بزاز به خاطر حنیف به خاطر بسرت به خاطر بچهت آقا من بچهی کوچیک دارم سه چار ماهش بیشتر نیست شما رو به خدا گریه کن التماس کن روی پاش بیفت نظر بچت بی مادر بزرگ بشه خودت بی پدر بزرگ شدی میدونی یتیم بودن یعنی چی؟ نفهمیدم مرد کی از پشت میزش بلند شده و که در رو باز کرده و من کی بلند شدم وسط اتاق ایستادم و های های گریه کردم حبیبه میگوید خدا ازشون نگذره بهتون سنگینی بشت زدن معصومه میگوید من که میگم کارکار ای شوهر نامردت بوده چیزی نمیگوید و سه روز از اولین دادگاه هم گذشته است تمام این مدت به خودم حرف زدم گذشته را مرور کردم همه اطرافیانم را با هم رو در رو و محاکمه کردم متهم ردیف اول روها میست نسبت به او خشمگینم از مادرم متنفرم از پسر عمیم بدم میآید مادرم یک بار هم به دیدنم نیامده حتی معصوم ملاقاتی داشت اما همه مرا فراموش کردم حبیبه میگوید شاید ممنوع ملاقاتی شاید اومدن ولی اجازه ملاقات بهششون ندادن. روحامی چی؟ او چرا گم و شده؟ او که از همین هاست؟ او که نفوظ دارد؟ او که نامش کلید هر قفلی بود؟ او کجاست؟ هنیف چی شده؟ نکند مرده باشد، نکند خود روحامی هم دستگیر شده باشد. می گوید یه چیزی بشه میگم ناراحت نشی من که میگم این نامرد تو رو برای بچه میخواسته. بعدشم برات پاپوش درست کرده و بچه رو ورداشته رفته پیش زن اولش داییه مادرم خدا بیامرز همین کارو کرد زن گرفت بچه دار که شد به زن بدبخت بهتون ناموسی زد از خونه بیرونش کرد بعد همون زن اولش رو ورد سر خونه زندگیش احساس میکنم مادیان مشهدی نوروز هستم. هر وقت کسی یک کره اسب میخواست، مشهدی نوروز مادیانش را برمیداشت میبرد جوارون تا از تخمه اسب که هر محمد خان کره ای در شکم مادیانش کاشته شود. و هر وقتی که از ایلاتی ها قاطر میخواست، مشهدی نوروز مادیانش را میبرد بنگون تا از تخمه ترکی علاق مشهدی رضا پالانچی مادیانش قاطر باربری بزاید. حبیبه میگوید خدا بهتر میدونه. شاید اونم گرفتار شده مأصومه میگوید امروز جمعه است اگرای بی غیرت من بیاد بهش میگم یه پرس بکنه جویی بکنه. حبیبه میگوید دورو کرد نماز حاجت بخون ایشالا خودش گره از کارت باز میکنه از اینکه بعد از این همه روز امروز ماجرایم را برایشان تعریف کردم پشیمانم خودم را کوچک و تحقیل شده میبینم دلم می به خودم سیلی بزنم. دلم میخواهد به در آهنی مشت بکوبم و به همه بد و بیراه بگویم. پتوی کنهام را بر جای جایی همیشه گیم دراز می کشم. سرم را زیر پتو می کنم و می بذار خودشو صبوک کنه. این بار که وارد می شوم مرد هم نگاهم میکند گویی میخواهد پاسخ همهی پرسش هایش را از چشمانم بخواند روی صندلی چرمی می نشینم. سکوت سنگینی بر اتاق خاکم است دلم نمیخواهد نگاهش کنم تصمیم گرفتم محکم باشم نمی خواهم بترسم با خود عهد کردم گریه گزاری نکنم حتی اگر به اعدام محکوم می شوم خانم محمد جنی، شما به چه دلیل به هاج آقا روحامی ازدواج کردید؟ منظورتون رو نمی از این وصلت چه بود؟ من انگیزه ای نداشتم. در واقع؟ نه نباید به او اجازه بدهی در زندگی خصوصیت وارد شود. بگو به تو چه؟ بگو زندگی خصوصی من انگیزه و نیاتم به شما چه ربطی دارند؟ ببخشید من فکر نمی کنم زندگی خصوصی من. اجازه بدین خانم محمدجانی توضیح بدم. همسر شما شاکی اصلی شماست. میخندم. خنده‌ای خنده که رو به گریه میرود. سعی میکنم بر خودم مسلط باشم. او مدعی شده شما به قصد استفاده از موقعیتش با او ازدواج اید. مسخره است. این کنای است که از جانم برمیخیزد. شما در خانه او اسنادی را پنهان کردید که امکان نگهداری اونها در جای دیگه ای نبوده. مثل همین نامه‌های های محسن به ملیه میخندم. همه چیز به نظرم خنده دار می خندم از خشن در خود دارد. میدونید مرتزا امیریون را اطراف خونه شما دستگیر کردن. ساکت می شود. دلم می بدانم این شخص کیست. او قصد داشته از طریق شما ترتیب خروج ملیه را از کشور بده. نفس راحتی می انگار تمام این بازیها برای فهمیدن همین مسئله بوده است. شما دست به کار حرام نبش قبر زدید. میدونید نبش قبر اجازه رسمی از مقامات دینی و حکومتی میخواد؟ لبخند میزنم. احساس میکنم کلام او شکوه آن کار سخت را از بین برده است. همه آن سختی ها تبدیل می شود به کلام ساده نبش قبر که میتواند شکافتن قبر همه گل برای دراوردن کفنش از لای دندانهایش باشد. چی میگید؟ چی بگم؟ از خودتون دفاع کنید. این آخرین محلت شماست. من حرفی ندارم. تنها چیزی که میخوام دیدن بچمه. بعد میتونید اعدامم کنید. میخندد. سرش تکان میدهد و میگوید. کی از اعدام حرف زد؟ فکر میکنم مجازات امادی که شما برشمردید اعدام باشه. دوباره میخندد. احساس میکنم او هم بازی میکند. شما قاضی نیستید. بهتر از اینجور فکر را نکنید. به هر حال من این مدت زیاد فکر کردم. برای من همه چیز تموم شده است. تنها چیزی که از این دنیا دوست دارم بچمه. اجازه بدین مطلبی رو خدمتون ارز کنم خانم محمدجانی امیدوارم مسئله رو درک کنید. شما و آقای روحامی دیگه هیچ نسبتی با هم ندارید. سکوت میکند. منتظر است نتیجه خبرش را ببیند. میخندم اگرچه در درونم خوقایی برپاست. امیدوارم این حرف یک شوخی باشد. با توجه به موقعیت پیش دادگاه تقاضای طلاق ایشون را پذیرفت. نمیگذارم حرفش تمام شود. فریاد ذهنم را بر زبان میآورم تکلیف بچمون چی میشه؟ میخواستم همین رو خدمتون ارز کنم. این ادب این نزاکت، این کلمات میخوان بار فاجعه را کم کند. با توجه به موقعیت پیش اومده، شما صلاحیت و شریعت نگهداری بچه رو ندارید. به همین دلیل دادگاه سرپرستی اون رو به پدرش واگذار کرده. کرده. پس همه چیز تموم شده. حکم طلاق جاری شده. سرپرستی بچه به او واگذار شده خانم محمدجانی برید خدا رو کنین که ملیحه و مادرتون همه چیز رو به گردن گرفتن وگرنه یعنی سالها در زندان میموندین ولیه که این کار کرده بود مادرم کجاست؟ یعنی مادرم هم در زندانه؟ از خودم بدم میاد من از اون متنفر بودم در حالی که شاید در سلولی کنار سلول من زندانی بود مادرم کجاست؟ مادرتون سر خونه و زندگیشه شه زن بیچاره رو با تهدید مجبور به اون کار کردن راحت می شود به جایی چهرهی مادرم چهرهی داوود در نظرم مجسم می شود شناسانه به مرد نگاه می متاسفانه خانم محمد جانی مهری هم به شما تعلق نگرفته زنی با شرایط شما حکم زن ناشزه رو داره. زن ناشزه مهریه نداره. میخندم. به تنها چیزی که فکر نکردم همین مسئله است. مرد سکوت میکند. احساس میکنم هنوز حرفایی برای گفتن دارد. اما نمیداند چگونه آنها رو بیان کند. برای من نه مهریه مهم بود و نه طلاق. من فقط دلم میخواست میتونستم خودم بچم بزرگ کنم. مطمئن باشین بچه شما خوب بزرگ خواهد شد شما امکاناتی برای بزرگ کردن اون ندارین از همه گذشته شما جوون هستید میتونید دوباره ازدواج کنید دلم میخواهد زودتر حرف آخرش را بگوید احساس بدی دارم فکر میکنم اگر این لحن ادامه داشته باشد ممکن است به دام روحامی دیگری بیافتم حالا تکلیف من چی میشه؟ تکلیف شما مشخصه شما آزادید کجا بروم؟ پیش مادرم نه به شمسابات بر نمی تحمل نگاه شما تدبار مردم و مادرم را ندارم به خانه روحامی می روم به بحانی دیدن حنیف. ممکن است دچار دردسر تازه ای بشوم باید ببینمش باید چشم در چشمش بدوزم و بگویم دنیا همیشه بر یک قرار نیست با تو شیر بازی نکن. تازه خلاص شده ای؟ باید بچه را ببینم. این حق طبیعی من هست. حق طبیعی نیست. ببین حق اجتماعی چه میگوید. باید روحامی را ببینم. باید توفت توی رویش بیندازم. چه فایده ای دارد؟ دوباره برای خودت درد سر درست بود. باید بگویم من مادیان مشهدی و روز نیستم. باید بگویم اگر زنده بمانم انتقام می گیرم. تمامش کن. دور روحامی و هنیف را خط بکش. فرض کن هیچ اتفاقی نیفتده. فرض کن بچه دار نشده. اصلا تو چهره حنیف هنیف را به خاطر داری؟ جز درد، بیخوابی و خستگی، چه خاطری از آن دوران داری؟ برو پیش مادرت، منتظر آزادی هیدر باش بالاخره این جنگ تمام می شود از کجا معلوم هیدر زن بیف بخواهد؟ آن هیدری که من می شناسم تهمانده دیگران را نمی خواهد هیدر ساده است دوستت دارد ساده بود دوستم داشت مگر من همان گلبانوی آن سالها هستم که هیدر همان هیدر آن سالها باشد باید از این شهر بروم. باید خودم را برسانم کرمان. شاید آنجا توانستم کاری پیدا کنم. با کدام پول میخوایی به کرمان بروی؟ بدون اینکه متوجه باشم به کتابخانه رسیدم. در را که باز میکنم مانیر خانم مثل فنر از جا میپرد. میشنوم یا اپول فصل. جلو میرفم. آشفته تر از است که تعرفم کند. صندلی را جلو میکشم و مینشینم. خوبی مانیر خانم؟ مانیر خانم به جای جواب دادن به من به طرف در می رود و کلید را در قفل می جرخاند. چرا در می کنی؟ بدون اینکه چیزی بگوید دستم را می گیدد. به گوشی سمت چپ جایی که به کوچه دید ندارد می رویم. همین جا بشین یا حسین کی آزاد شدی همین امروز صبح واقعا آزاد شدی یعنی میخندم چشمهای مانیر خانم دو دو میزنند خدا رو شکر خدا رو شکر چرا انقدر دست با بشین باورم نمیشه باورت بشه همه تموم شد پیش مادرت نرفتی؟ نه از مینی بوس که بیاده شدم اومدم اینجا خوب کردی نرفتی بیچاره اونم خیلی چزوندن خوب تعریف کن مانا پسر امو خوب خوبن. خوب هم هر تا سکوت میکنیم دلم میخواهد سوالی را که مدام در ذهنم تکرار می شفت بر زبان بیاورم. اما میدانم اگر به منیر خانم فرصت بدهم خودش همه چیز را میگوید. خدا ازش نگذره. کی باور میکرد؟ می کرد؟ چه میدونم؟ خدای او شبی که اومد خونه ما تی چشم قمی بود. یه جوری بود تو پر بود. ولی به نظرم تو دلش با خودش جنگ داشت. میگفت من که چیزی برا گلبانو کم نزاشتم که این بلا رو سرم آورد دیگه نمیتونم سر بلند کنم آبرو رو اعتبار چند سالم رو برد چمدونت رو ورده بود گفت مادرش اطمینان ندارم شما بهش بدین اون پولی هم که پسنداز کرده بودی گذاشته بود تو چمدون به خودم میگویم کدوم پول؟ من که پولی پسنداز نکرده بودم گفت فردا برای همیشه از اینجا میره گفت دیگه نمیتونه تو این شهر بمونه اونم زندگیش از هم پاشید آخه دختر چرا لگت به بختت زدی؟ گور پدر ملیه نگفت کجا میره؟ ولایتش دیگه مشهد تهران حتما پیش زن اولش چه حرفا میزنی گل بانو اون که زن اولش رو طلاق داده خب دوباره رجوع میکنه خدا به دور یه جوری حرف میزنی چه جوری؟ چه میدونم یه جوری شدی. هر دو سکوت می‌کنی. احساس سبکی میکنم حس کنم باری از روی دوشم برداشته شده. فکر کنم این آغاز خوبی برای فراموش کردن روحامی از من کیلومترها فاصله دارد در شهری دیگر در جایی ناپیدا پس من می توانم راه خودم را بروم بدون ترس بدون واهمه ولی حنیف چه می شود او هر جا باشد پسر من است این دوری این فاصله این ناپیدایی از همین الان راهی جلو پایم می گذر. بگرد او را پیدا کن، حتی اگر پنجاه سال دور بکشد. یه خبر خوبم برات دارم، قربون بزرگی خدا برم، گر به حکمت ببندد دری، به رحمت گشاید در دیگری. یه نامه برات اومده، نامه؟ آره، یه نامه از دانشگاه برات اومده، راستش اول نمیخواستیم بازش کنیم. ولی خب با این اوضاع و احوال به سرمد صلاح دید بازش کنه. هایم همیشه به آدرس مانیر خانم می‌آمد. سعید هم نامه‌اش رو به آدرس مانیر خانم فرستاده بود. خب خب که خب گفتن در رشته فلسفه دانشگاه تهران پذیرفته شدی. میتونی بری ثبت نام کنی.